دوستان به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. امروز مطالعه کتاب ابرانیان رو ادامه میدیم. این شاهکار اصرارامیز که کتاب الهیاتی عظیم در مورد شناخت ایسای مسیح و شاهدی بر ایمان ما هست. امروز معلم ما ما رو به قلب این کتاب هدیت خواهد کرد. به باب ایمان. یادتون باشه که کتاب ابرانیان به مسیحیانی نوشته شده که به خاطر ایمانشون به شدت تحت جفا قرار داشتند تحت چنین شرایطی مردم گاهی به طرز باور نکردنی به فکر میفتند که ایمانشونو رها کنند این شما و این معلم ما به درس امروز با هم گوش می‌کنیم کتابی که امروز بررسی می‌کنیم کتاب ابرانیان از عهد جدید است در این جلسه می‌خواهیم یکی از بزرگترین بابها در کتاب مقدس و بزرگترین باب کتاب ابرانیان رو بررسی کنیم. این باب باب یازدهم کتاب ابرانیان هست و زمینه ای که این باب بزرگ ایمان در اون داده شده از اواخر باب دهم ده شروع میشه. اونجا که میگه گه ولیکن ایام سلف را به یاد آورید که بعد از آنکه منور گردیدید متحمل مجاهده ای عظیم از دردها شدید. چه از اینکه که از دشنامها و زحمات تماشای مردم می شدید و چه از آن که شریک با کسانی می بودید که در چنین چیزها به سر می بردن زیرا که با اسیران نیز هم درد می بودید و تاراج اموال خود را نیز به خوشی می پذیرفتید. چون دانستید که خود شما را در آسمان مال نیکوتر و باقی هست پس ترک مکنید دلیری خود را که مغرون به مجازات عظیم می باشد زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده وعده را بیابید زیرا که بعد از اندک زمانی آن آینده خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود لکن عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرتد شود نفس من با وی خوش نخواهد شد لکن ما از مرتدان نیستیم تا هلاک شویم بلکه از ایمانداران تا جان خود را در یابیم. پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده زیرا که به این برای قدما شهادت داده شد به ایمان فهمیده ایم که ها به کلمه خدا مرتب گردید حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد به ایمان حابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت داده شد که عادل است به آنکه خدا به هدایای او شهادت می دهد و به سبب همان بعد از مردن هنوز گوینده است، به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد چرا که خدا او را منتقل ساخت زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رزامندی خدا را حاصل کرد لکن بدون ایمان تحصیل رزامندی او محال است زیرا هر که به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا میدهد وقتی که به بررسی کتاب ابرانیان ادامه میدیم به قلب مبحث این کتاب می رسیم در اولین جلسه بررسی این کتاب به شما گفتم که سعی کنید مبحث کتاب ابرانیان رو درک کنید اگر مبحث این کتاب رو درک کرده باشید مطمئنم که متوجه شدید که نویسنده این کتاب عیسی مسیح رو ارزه میکنه او میگه عیسی مسیح بهتره و قوم یهود رو که خطاب به اونها می نویسه تشویق میکنه که بفهمند و باور کنند که عیسی مسیح بهتر از تمامی چیزهایی هست که اونها به شدت به اونها ارزش قائلن انبیا فرشتگان موسی یوشه، كهنادت عهدها و خیمه پرستش در بیابان اینها همه چیزهایی هستند که نویسنده میگه عیسی از اونها بهتره نویسنده این شاهکار الهیاتی اعلام میکنه که عیسی مسیح بهتر از تمامی اون اشخاص و اون چیزهاست و این ایمانداران یهودی تحت ستم رو تشویق میکنه که خودشون رو تماما به عیسی مسیح بسپارن. از محتوای این کتاب میفهمیم که بعضی از آن یهودیان ایماندار به حدی ناامید شدند که در صددند ایمانشان به عیسی مسیح و به خدا را رها كنند بنابراین کتاب ابرانیان پر از نصایع هست نصیحت هایی هست که به اونها میگه از خط ایمان رو بور کنند و حقیقتا به عیسی مسیح ایمان بیارن. نصیحت هایی هست که میگه وارد معجزه ایمان و نجات بشن. وقتی نویسنده به انتهای باب ده میرسه و وارد باب یازده میشه تا انتهای نامه او وارد قلب بحث خودش میشه. چیزی که او به این مردم تحت ستم ناامید میگه اینه که ایمان خودتون رو کنار نذارید او دلایلی به ایمانداران یهودی تحت جفا میده که چرا باید ایمانشان را کنار نذارن؟ باب یازده عبرانیان به باب ایمان در کتاب مقدس معروف است. وقتی این باب رو در زمینه ای ملاحظه کنید که من از اونجا در باب ده شروع کردم خواهید فهمید که ابرانیان باب یازده بیش از فقط باب ایمان هست باب یازده همه کتاب ابرانیان نصیحتی برای این هست که ایمانتان را کنار نذارید این بخشی از استدلال نویسنده کتاب ابرانیان هست او ده یا دوازده دلیل میده که چرا نباید ایمانتون رو کنار بذارید و عبرانیان باب 11 بخشی از اون نسایه هست در باب ده، اون جایی که من شروع به خواندن کردم نویسنده با این مردم صحبت میکنه و البته به طور کاربردی با من و شما هم صحبت میکنه مخصوصا اون عده از ما که ناامید هستیم و یا تحت ستم هستیم و مشکلات زیادی داریم که ما رو تا حدی ناامید کرده که چیزی نمانده ایمانمون رو رها کنیم او با ما صحبت میکنه و میگه اولا ایمانتان را کنار نگذارید چون که ایمانتان شما را نجات داده. بنابراین به زمانی فکر کنید که تازه ایمان آوردید و نجات پیدا کردید. نمیدونم شما تاریخ تبدیلتون رو به خاطر دارید یا نه. من معتقدم همه ما تاریخ تجربه روحانی که ایمانمون رو هنگام تعمید آب اعتراف کردیم به خاطر داریم. پس این امکان هست که تاریخ اون تجربه روحانی رو به یاد داشته باشیم. نویسنده ابرانیان به ما میگه که اون تجربه روحانی رو به یاد بیاریم این افراد آشکارا تجربیات نجات قطعی داشتند که شور و التهاب و محبتی برای مسیح داشتند نویسنده به اونها خاطرنشان میکنه که اون تجربه روحانی رو به یاد داشته باشند که چگونه وقتی همه چیزشون را از دست میدادن شاید زندانی میشدن و تحت آزار قرار میگرفتند، اون رو با شادی تحمل میکردند و میدونستند که در آسمان پاداش بهتری دارند حالا نویسنده میگه به اون تجربه درونی ایمان و نجات فکر کنید و فکر کنید که اون تجربه برای شما چه مفهومی داشت متوجه باشید که شما با ایمان نجات یافتید بنابراین هر کاری میکنید بکنید اما ایمانتون رو کنار نذارید چون ایمان شما بود که شما رو نجات داد بعد نویسنده دلیل دیگری برای یهودیان ایماندار میاره که چرا نباید ایمانشون رو کنار بذارن در آیه 38 از باب ده او آیه ای از حبقوق نقل میکنه که میگه مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود در این زمینه به عنوان بخشی از استدلالش نویسنده ابرانیان میگه ایمان شما نه شما را نجات داده بلکه شما برای ادامه زندگی به ایمان نیاز دارید چون با ایمان زیست خواهید کرد شما با ایمان تنها نجات پیدا نکردید بلکه با ایمان زندگی میکنید وقتی این کتاب نوشته میشد تقسیم بندی باب ها به صورت کنونی نبود استدلال کتاب ابرانیان ادامه پیدا میکنه گرچه باب ها در این نقطه تقسیم بندی شده در آیه یک باب یازده چیزی که نویسنده میگه اینه به خاطر ماهیت ایمان ایمان خودتون رو رها نکنید این زمینه ای هست که او در اون شرح عظیمی از ایمان به ما میده توصیف ایمان بسیار مشکل هست اما شما میتونید ایمان رو وصف کنید این کاریه که نویسنده ی کتاب عبرانیان در این آیه انجام میده و مینویسه ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده در پایان باب محبت اول قرنتیان 13 پولس رسول گفت که سه خصوصیت هست که در زندگی پایدار امید ایمان و محبت و بلافاصله اضافه میکنه که بزرگترین اونها محبت هست. اما اینجا در آیه یک باب 11 عبرانیان ما گام بعدی رو در طبقه بندی بین امید و ایمان برمیداریم نویسنده میگه ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده برای اینکه ایمان ایمان باشه باید نشانه برای پشتیبانی از عقیده باشه که چیز خوبی برای شما اتفاق خواهد افتاد این فرق بین امید و ایمان هست یادم یه باروااضی می گفت که کسی او رو برای شام دعوت کرده بود او امیدوار بود که برای شام خوراک مرغ داشته باشند در حالی که هنوز هیچ نشانه ای نبود که اونها خوراک مرغ خواهند داشت او فقط امیدوار بود که سر میز مرغ خواهند داشت اما وقتی او در اتاق پذیرایی نشسته بود بوی مرغ به مشامش میخورد و اونها مرغ رو سر میز آوردند پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده حالا او نه تنها امید داشت بلکه میتونست ایمان داشته باشه که برای شام مرغ خواهد خورد این کاملا شبیه چیزی هست که نویسنده ابرانیان میگه ایمان به امید شما واقعیت میبخشه ایمان گام بعد از امید هست گام نخست امید هست و بعدی ایمان پولس گفته محبت بزرگتر از ایمان و امید هست چون وقتی محبت آگاپه را تجربه میکنید محبت خدا فقط چیزی نیست که شما را به چیزی برسونه که اون چیز شما را به خدا برسونه. اصالت محبت خود خدا هست. وقتی شما محبت آگاپر را تجربه کنید، به جایی وارد میشید که خدا هست. اما اینجا زمینه استدلال این هست که به خاطر ماهیت ایمان، ایمانتون رو رها نکنید. ایمان تحقق امید شما هست. و یا اساسی هست که امید شما را قابل باور میکنه و ایمان نشانه ای از چیزهایی هست که هنوز دیده نشده. برای اینکه ایمان شما ایمان کتاب مقدسی باشه موضوع ایمان شما باید نادیده باشه وقتی میزبان مرغ رو روی میز میذاره وقتی شبان به مرغ نگاه میکنه او دیگر به امید یا ایمان نیاز نداره که برای شام مرغ خواهد داشت شما زمانی که موضوع ایمانتون در دست, دست هست دیگر نیازی به ایمان ندارید ایمانی ایمان کتاب مقدسی هست که هدف اون در دید نباشه اما شواهدی باشه که این عقیده رو پشتیبانی کنه که هدف نادیده وجود داره. بنابراین بهترین تعریف برای ایمان این میتونه باشه. ایمان عملی هست بر مبنای شواهد از باور به چیزی یا کسی که نمیتونید ببینید. در این متن در پایان این بخش نویسنده کتاب ابرانیان به ما میگه که خود ایمان شاهدی برای چیزی نادیده هست. در این مورد چیز نادیده خدا هست نویسنده میگه بزرگترین دلیل برای وجود خدا زنان و مردانی هستند که ایمان دارن. بر اساس عهد جدید ایمان هدیه ای از جانب خدا هست بنابراین زن یا مردی که ایمان داره بزرگترین دلیل بر روی زمین هست که عطا کننده ایمان وجود داره وقتی شما برای خدمت تحصیل میکنید کنید دورههایی رو میگذرونید که به اون شواهد مسیحی میگن شواهد مسیحی دوره هستند که شما رو تجهیز می تا در نبرد برای کتاب مقدس پیروز بشید و یا در مباحثات مربوط به مسائل روحانی مانند اینکه آیا خدا وجود داره یا نه پیروز بشید. وقتی شما این دوره رو میگذرونید تمام شواهدی که ثابت میکنه کتاب مقدس کلام خداست و تمام شواهدی که اعتبار مسیحیت رو نشون میده مطالعه می کنید. اما وقتی به شواهد مسیحی فکر می کنید، آیا واقعا میدونید بزرگترین شاهد مسیحیت چیه؟ نویسنده کتاب ابرانیان در باب یازدهم می نویسه بزرگترین شاهد برای وجود خدا مرد و زنی هست که ایمان داره چون که خدا منبع اون ایمان هست ایمان هدیه ای از خداست و کسی که عطیه ایمان رو داره شاهدی بر این هست که باید کسی باشه که اون ایمان رو عطا کرده باشه در بین بقیه چیزها نویسنده این متن عمیق به ما میگه که خود ایمان شاهدی هست که وجود خدای نادیده رو به ما نشون میده من از شما میپرسم آیا میدونید وقتی کتاب مقدس میگه ایمان عطیه ای از جانب خدا هست و ایمان بزرگترین شاهدیه که نشون میده عطا کننده ایمان وجود داره معنی این چیه به غیر از دیگر چیزها به این معنی هست که مهمترین موضوع در رابطه با ایمان اینه که آیا شما مایلید که هیه ایمان را از خدا دریافت کنید؟ ایمان انتخابی اقلانی نیست. ایمان موضوعی ارادی هست یا تصمیمی که ما میتونیم بگیریم. آیا می باور کنیم؟ آیا می باور کنیم؟ یا امیدوار هستیم که اصلا تمام اون حقیقت نداره چونکه نمیخواهیم به های عواقب اخلاقی ایمان رو بپردازیم. من سالها عمرم را هدر کردم، چون که روی کردی اقلانی به ایمان داشتم. پولس به فیلیپیان گفته که اون به اونها داده شد تا باور کنند. خدا میخواد عطیه ایمان رو به شما بده. آیا شما مایلید اون رو دریافت کنید تا تبدیل به بزرگترین شاهد برای خدا در روی زمین باشید؟ شاهدی برای عطا کننده ایمان؟ اگر میخواهید همین الان با خدا حرف بزنید و به او بگید خدایا من میخوام عطیه ایمان داشته باشم. کمک کن در ایمان رشد کنم، کمک کن راههای های تو رو پیروی کنم، وقتی نویسنده ابرانیان به آیه شش بابه یازده میرسه، این طور می نویسه. به خاطر کارهایی که ایمان میتونه تونه بکنه، ایمان خود را رها نکنید. بعد او می نویسه، بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال هست. زیرا هر که تقربه به خدا جوید، لازم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را ج او در مورد کسانی با ما صحبت کرده که به خاطر داشتن ایمان خدا را خوشنود کردند. او از مردی به نام خنوخ با ما صحبت کرده که به خاطر ایمانش به آسمان رو بوده شد. از واعظ پیری شنیدم که این طور می گفت. خنوخ پیر مردی بود که همیشه خیلی نزدیک به خدا راه می رفت. و روزی خدا به او می گه، خنوخ خانه من نزدیکتر از خانه تو هست. چرا نمیای بریم خونه ما؟ و به این ترتیب خدا او رو با خودش به خانه آسمانی میبره. نویسنده ابرانیام میگه که خدا خنوخ را به آسمان برد چون او خدا رو خوشنود میکرد. او همینطور گفته که حابیل ایمان داشت و خداوند به این واقعیت شهادت داد که حابیل عادل بود. بنابراین با ایمان شما میتونید در جایگاهی قرار بگیرید که خدا شما رو عادل اعلام کنه. چون که او رو خشنود کردید. چونکه او رو خوشنود کردید بعد او با این گفته به بحث خودش خاتمه میده او میگه لیکن بدون ایمان تحصیل رزامندی او محال است زیرا هر که به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا میدهد عیسی گفته بخواهید به شما داده خواهد شد به پیدا خواهید کرد بکوبید در برویتان باز خواهد شد ایسا همینطور وعده بزرگی داده. او گفته هر کسی که به طلبت دریافت خواهد کرد هر کسی که بجوید خواهد یافت و هر کسی که بکوبد دری به سوی خدا برویش گشوده خواهد شد اگر شما دریافت نکردید و پیدا نکردید و در خدا بروی شما گشوده نشده معنیش اینه که مشکلی در طلبیدن شما جستجوی شما و کوبیدن شما وجود داشته عیسی گفته هر کسی به طلبت هر کسی بجوید، هر کسی بکوبد، دریافت خواهد کرد، خواهد یافت و به رویش گشوده خواهد شد. اینجا همون مفهوم هست. اگر شما به سوی خدا بیایید، باید ایمان داشته باشید که او هست. این یعنی ایمان و باید باور کنید که او به کسانی که با پشتکار او را بجوین پاداش خواهد داد. جستجوی با پشتکار او یعنی چی؟ عیسی گفته به طلبیدن ادامه بدید. گفته به جستجو ادامه بدید و همچنان بکوبید. جستجو کردن تلبیدن شدید هست. کوبیدن جستجوی شدید هست. این همون چیزیه که بهش دعای مداوم میگیم. دعای مداوم در مسئله های تعلیم داده شده. خدا به ارمیای نبی اینطور گفت. شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت. چون از سمیم قلب خواهان من بودید. دوباره مبحث کتاب ابرانیان این هست. ایمان خودتون رو رها نکنید چون بدون ایمان نمیتونید خدا رو خشنود کنید و نمیتونید به سوی خدا برید پس هر کاری میکنید ایمان خودتون رو رها نکنید بعد او وارد باب بزرگ ایمان میشه پشت سر هم از این شواهد عظیم مسیحی مثال میزنه شاهدان مسیحی او کسانی هستند که ایمان دارند وقتی گرامر میخوندید اگه یادتون باشه میدونید که فعل چی هست باب یازده ابرانیان رو بخونید و زیر تمام افعال خط بکشید کلماتی که مربوط به عمل هستند وقتی این کار رو بکنید پیامی در مورد ایمان خواهید داشت تمام این مثال‌های قهرمانان ایمان از این جهت قهرمان ایمان بودند چون کاری کردند به این دلیل که میگم ایمان عملی از روی باور هست در مورد کسی یا چیزی که نمیتونید ببینید باید عملی از جانب شما صورت بگیره که نشون بده واقعا ایمان دارید مردی به نام نوح بود خدا زمانی نزد نوح آمد که حتی بر زمین باران نباریده بود خدا به این پیرمرد گفت باران خواهد بارید خدا نزد او میاد و میگه نوح از تو میخوام که یک کشتی بسازی و نوح میگه باشه میسازم اما کشتی چیه باران چیه چیزهایی که هنوز دیده نمیشدند نویسنده ی کتاب ابرانیان میگه نوح هرگز این چیزها رو ندیده بود اما باز مینویسه به ایمان نوح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده الهام یافته بود خدا ترس شده کشتی به جهت اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا را ملزم ساخته وارث آن عدالتی که از ایمان است گردید خدا نزد این مرد میاد و به او میگه که باران خواهد بارید چشمه های آب از زمین خواهد جوشید آب متلاطم خواهد شد خدا میگه کشتی بساز اون مرد به مدت 120 سال روی اون کشتی کار میکنه نمیدونم دونم شبان شما یا معلم کانون شادی شما به شما گفته که اون کشتی چه شکلی بود اگر با دقت جزئیات اون رو بخونید اون کشتی چیزی مثل یک ناو هواپیمابر عظیم بود اون وسیله خارق بود ساختن اون 120 سال طول کشید در تمام مدتی که نوح این کشتی رو میساخت، او در واقع واعظی بود که عدالت رو موعظه کرد. او موعظه کرد اما کسی به او باور نکرد روزی در کشتی بسته شد باران شروع به باریدن کرد و چشمه های آب از زمین جوشید آب بالا و پایین می رفت و تنها راه نجاتین بود که در اون کشتی باشی پتروس به ما میگه که اون کشتی تصویری از نجات هست در این باب گفته شده که نوح تصویری از ایمان هست و اینکه ایمان میتونه چه معنی داشته باشه و چیکار بکنه خدا به نوح هشدار داد میتونید بگید که اون شاهدی بیرونی برای ایمان بود خدا به نوح اختار کرد با نوح صحبت کرد نوح با ترس حرکت کرد و این میتونست نشانه درونی ایمان باشه و یا واکنش به کلام خدا که یاد گرفتیم در مورد ایمان اهمیت داره اما این جاییه که ایمان عملی میشه نوح یک کشتی ساخت او کاری کرد او کشتی ساخت و نتیجه این بود که اهل خانه نجات یافتن و او شهادتی برای کل دنیا شد که او به خاطر ایمانش عادل بود نویسنده بعد نمونه‌های ایمان بیشتری رو ذکر میکنه. از ابراهیم شروع میکنه. او لیستی از قهرمانان ایمان ارائه میکنه. کاربرد اون مشخص هست. چطور میتونید این افراد رو جدا از ایمانشان توصیف کنید چطور میتونید مردی مانند نوح رو که در اون کشتی کار میکنه توصیف کنید چه کسی به مدت 120 سال به نوح میگه باران خواهد بارید. میتونید ببینید چرا نویسنده از مردی مثل نوح صحبت میکنه که ایمان داره، او نشانه و دلیلی برای وجود خدای نادیده هست. در زمینه یه بحثش نویسنده میگه به خاطر کاری که ایمان میتونه بکنه، ایمانتون رو رها نکنید. برخی به باب یازدهم ابرانیان امارت معروف ایمان میگن. وقتی او باب دوازده رو شروع میکنه، اینطور مینویسه بنابراین چون که ما نیز چنین عبر شاهدان را گرداگرد گرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم. و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی ایسان گران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، بیحرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. بسیاری معتقدند که ای که نویسنده در لیست قهرمانان ایمان عهد قدیم برای ما ذکر میکنه این هست. مثل این هست که شما در استادیوم بزرگی هستید و اون اده از ما که زنده هستیم امروزه در مسابقهای در حال دویدنی. ما ورزشکارانی هستیم که در اون مسابقه شرکت کردیم. در روی سکوها کسانی نشستند که نویسنده به اونها انبوه عظیمی از شاهدان میگه. این شاهدان می بینند که ما در مسابقه می دوییم. اونها قبلا دور خودشون رو دویدند آیا باور می کنید که این امکان وجود داره که کسانی که در گذشته اند، کسانی که پیش از ما رفته اند میدانند که امروز در زندگی های ما چه اتفاقی می بسیاری از مردم معتقدند که این کار بردی برای این استعاره الهامی هست. در مورد مرد جوانی شنیدم که بازیکن ذخیره یک تیم بزرگ بود. او اونقدر ورزیده نبود که بازی کنه اصلی باشه مربیان احساس میکردند که او هنوز به حد کافی ورزیده نشده روزی شنید که پدرش مرده و مجبور شد از شرکت در تمرینات عذر خواهی کنه وقتی روز شنبه صبح او به تیم برگشت به اتاق مربیان رفت و سر مربی درخواست کرد که اجازه بده در بازی شرکت کنه او گفت من میخوام این بازی رو برای پدرم بکنم اگر میشه به من اجازه بدید که در این بازی شرکت کنم بالاخره مربی چون خیلی برای او متاسف بود اجازه داد و گفت باشه میتونی شرکت کنی مرد جوان در اون بازی شرکت کرد و نقش خارق العاده ای در اون بازی ایفا کرد او به عنوان ارزشمندترین بازیکن اون روز شناخته شد بعد از بازی که تیم او برنده شد همه شاد بودند مربی نزد او رفت و گفت میخوام سوالی ازت بپرسم چطور شد که مرگ پدرت به تو چنان انگیزه ای داد که بازی ارائه بدی که هرگز قبلا از تو ندیده بودیم. مرد جوان گفت: پدر من هرگز هیچ کدام از بازیهای های منو حتی اگه در اون بازی شرکت هم نمی کردم ندید. اما پدرم در واقع هیچ کدام از بازیهای های مرا ندید. او نتونست ببینه که آیا من خوب بازی می یا بد؟ چون او نابینا بود. اما حالا او در آسمانه و از اونجا میتونه ببینه به این دلیله که من این بازی رو به خاطر پدرم کردم. این اولین بازی بود که، پدرم بازی من دید. آیا به این باور می کسانی هستند که اولین آیه باب دوازده رو عملا میپذیرند. پذیرند. به گفته نویسنده کتاب ابرانیان ما نباید ایمانمون رو رها کنیم چون خیلی عظیمی از شاهدان ما رو احاطه کردند. وقتی بقیه بحث این کتاب مهم رو پی می گیرید بابهای کاربردی بردی ای می بینید. من فکر می کنم که نویسنده حالا نظراتش رو در مورد بحثش بیشتر ارائه میکنه اما در باب دوازده او کاربرد های خاار العاده ارائه میده وقتی کتاب ایوب رو بررسی می کردیم، یادتونه که سی دلیل کتاب مقدسی ارائه کردیم که چرا خدا اجازه میده قومش به زحمت بیفتد. وقتی این بررسی رو می کردیم به باب دوازده ابرانیان اشاره کردیم اونجا که نویسنده میگه گاهی وقتی شما در رنج هستید دلیل رنج شما این هست که باید تصویع بشید شما فرزند خدا هستید و چون پسر و دختر خدا هستید نفرزند نامشروع خدا وقتی از اون می میکنید او شما رو تنبیه میکنه او شما رو تذکیه میکنه این حقیقت بارها در کتاب مقدس تکرار شده او میگه همه کسانی را که دوست میدارم سرزنش میکنم و تعدیب مینمایم پس قیور باش و توبه کن وقتی مردم رنج میکشند به اونها نگید که اونها تنبیه شدند. شاید دلیلش این نباشه وقتی من اون لیست سیگانه دلیل رنج کشیدن رو به شما دادم گفتم که سراغ کسی نرید و به او نگید که این به خاطر دلیل شماره سیزدهه ممکنه دلیلش این نباشه میتونه 29 دلیل دیگه داشته باشه که چرا اونها رنج میکشن اما گاهی یکی از دلایل میتونه این باشه که مردم دارن تنبیه میشن به قول نویسنده ابرانیان اگر علت رنج شما این باشه که دارید تنبیه میشید رنج شما دلیلی بر این هست که شما دختر یا پسر خدا هستید تصور کنید در حیات پشت منزل شما چند نفر بچه حرف های رکیک و شما به همسرتون می اگه اونها بچه های من بودن میدونستم باشون با چی کار کنم و فکر کنید که همسرتون بهتون بگه عزیزم اونها بچه های تو هستند. آیا از در پشتی بیرون نمی‌دید و چون اونها بچه های شما هستند تنبیهشون نمی اگر اونها بچه های شما نبودند شما مسئول تربیت اونها نبودید اما اگر بچه های شما باشند، شما در مورد تربیت اونها مسئول هستید این موضوع مورد بحث باب دوازده هست نویسنده میگه و نصیحتی را فراموش نموده اید که با شما چون با پسران مکالمه می کند که ای پسر من تعدیب خداوند را خار مشمار و وقتی که از او سرزن شیابی خسته خاطر مشو مش زیرا هر که را خداوند دوست می‌دارد توبیخ می‌فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند. خدا میخواد شما مقدس زندگی کنید و اگر مقدس زندگی نکنید و برکات زندگی مقدس را از دست بدید، خدا شما را تنبیه می‌کند. در مکاشفه 3:19 می‌گه همه کسانی را که دوست می‌دارم سرزنش می‌کنم و تأدیب می‌نمایم. پس قیور باش و توبه کن. چیزی که در زندگی‌های ما رو میزنه چیه؟ گاهی اون یک مشکله و اون مشکلات تنبیهی از جانب پدر آسمانی مهربان ما هست که سعی داره توجه ما رو جلب کنه. نویسنده به ما میگه که تنبیه میوه آرامبخش آرام بخش ادالت رو به بار میاره. اگرچه تنبیه شدن خوشایند نیست، اون تنبیه سمرات آرامبخش بخش ادالت رو به بار میاره. این رو میتونیم تنبیه انضباطی یا تربیت بگیم. بعد از ارائه مپسش، نویسنده این کتاب عمیق رو با تشویق برای مهمان نوازی به پایان میبره او می نویسه و از غریب نوازی قافل مشو زیرا که به آن بعضی نادانسته فرشتگان را زیافت کردند بعد او به ما میگه که زندانیان رو به خاطر بیاریم. چنان که گویی با اونها در زندان بودیم بسیاری از ایمانداران کلیسه های اولیه اکثران در زندان بودند نویسنده این شاهکار رو با این تشویق به پایان میبره که از شبانان روحانی خودتون که مسئول رفاه روحانی شما هستند، اطاعت کنید شما رو تشویق میکنم که این شاهکار اسرارانگیز رو که به اون کتاب عبرانیان میگیم بخونید تا مبحث کلی اون دستگیرتون بشه وقتی این کار رو میکنید یادتون باشه که این کتاب تماما در مورد عیسی مسیح و کلمات کلیدی عبارتند از بهتر باور کنید و زنهار من با این چالش از کتاب عبرانیان برنامه امروز رو به پایان میبرم هر کسی که به طرف خدا میاد و از خدا درخواست میکنه باید باور کنه که خدا هست و کسانی رو که با جدیت او را جستجو میکنند پاداش خواهد داد آیا شما با جدیت به دنبال خدا میگردید اگر باور دارید که خدا هست او وعده داده که به شما پاداش خواهد داد نوح موسا داوود ابراهیم این قهرمانان ایمان یک چیز مشترک داشتن، اونا به خدا ایمان داشتن و اون ایمان اونها رو به عمل وامی داشت. همونطور که در درس امروز شنیدیم، لازمه ایمان عمل هست و بدون ایمان نمیتونیم خدا رو خوشنود کنیم. خب، به پایان درس عالی دیگه ای از کلام خدا رسیدیم. ایمان داریم که شما با درس امروز برکت گرفتید و در ایمانتون تشویق شدید. برنامه تون رو طوری ترتیب بدید که در جلسه بعد هم با ما همراه باشید. در جلسه آینده کتاب کوچک و قدرتمند یعقوب رو بررسی خواهیم کرد.